گمر کردنی دلیر سلین گگرانی عزیز و خوشوییست سلاوتن لیب خوشحالین لبشی هشتو ششی خوید نوی کتیبی چشتی مجیوری هجاری مکوریانی حتی نوی خزمت تن فرمون لگل من جاریم خوړیانی بار دوامه لس جرانوی بسره تکانی جیانی لوکاتی کلا پاریز بو او بو منپاستکات جنوپی فرانسایی زور به پوشی ادید درونی جل کاری کی باور که با دید جنکم دی کوتو شروالکی خامس پی بو بل مو دروابو هر حز دکړ لی بروانی دغل صادق چوینه بازار او ګرکی مونمرتر دکانی دوکانی به حسیری برباو تنک پر لپیاوی رشو سوري مسلمان پرلکتی بی دعای عربی شاخمار شتی جادوگریو ترو تویلین ده فرشد. با صادق لویل دوکانکی جل فرشد دستیک کتو شلوار من کری که ایران با نرخی ندهد. هموی با ست و شیست فرنگ. شوی چرده جولای چون سیرانی جیشن ازادی فرانسا. سیری فوارو توب تقندنو بزمو شای اوگل سربلین دمان کرد جویزویتی جنرال دیگول جشن جیشنه دا گویتی مسلی که کر پیوان قلايان دجرين کليل كابجنان و لون کليلي قلا كردنا و وردجرين. به سحابت رجل فرانسا مينوا و براو بغداد رينوا. لمسركچوبين لا فرجي قاهره پينز پاكچاي لب تنو. چوار بوتل ويسكيم بدياري بردبو. دستبندي كي زيارش با جويز. دستش مدادنم پركردبو لجگاري جيتانو. زور لا جوريج نانو پیوانو سرعتي جوان كيله و مالوا. او شمل بیرچو بلم کا پولو ادیت جنومردی کی روزنامچی کچنجاران له کوردستان و له نو شورش دی تبو ماننو له بغداد دعوته دعوتیان بوکردین داکتور قاسم لوشیان میوان بو قرطالی کی پرلنانیان لپنا داناین وتیان کورد زور حزلنان دکن هر او پول کتابی زورچاکی بنامی کریز کوچهرا لسر کرد نویسی و کتاب کم شناخته شده است. جناکی آلبومی زورگوری پرلا اکسی پیشمرگا نشان دادن یادگاری سفر کنیان کردستان. لژنیف دابازین ببن به بن پرداخته که دبوب تیپاری منیان راگرت لشمگران قطع سیگار کم پیو پشکنین اشاره دبو آس نمی‌پی. ویان زنی بو تا کم هالگرتوا. لیتالیا لفرجا ساعتیک مینوا. روانیم لساعتیک نوسرابو نرخی هشت هزار لیره. فیتیکم بولیدا کابراهیگ عراقی لولاموتی. فیتینا و بعد چوار دیناره. زور هرزانه. لفرجی بین المللی قاهره دعبزن. همو زاوکو خوشیدیمنی پاریسیانم لیبرچووا. گارسون بکراسی شور عربی. رش وک قیل با ماویک دبول چوارجی فیش امضا کن. کمال کیف دستی که کری به پینز دینار، من نم کری، که هاتی بغداد نرخی هفته دینار بود، احسان شیرزاد و چند لحاو کران من، لفرگا چاو نورمان بود، جگل مال و مندالی خوشمن، بدردی کرد وطنی زور به دستی پرحات بوینو زوریان کیف به بحری سفر کمن هاتو زانیاری قدر لیا کردین، چون خبری کلاسای شم به ده، فرمی کاری که به فایده خردوپ پیوندیان دگل دگرین کبیست مولب آباد درمانو کمکی تراوا زوریان چاکه کرد بو لبقدا و حتی چوی کیستانو شورش مزور دکرد. دمدی که آوانی دو نه هوسنگری پیش مرگ بونو، استعال دوالت پلو راونو پلاو پایی اندسکاوتوآ چون هم مشتیکان هر حاولی پولو و قصر پیدا کرد نخوانن. شعر يكم حلق ملق نوسى للمجالي هولير دا كلا هولير دردكوتو كاق محمد مولود ممسر پرستیده کرد چاب کرد هرچی وزیر و استاندار و فرمانده ذکر كرد بونو مليان لدزيو پوکوه کرنوو پیش مرگ لبیرشونو نابو زوری پیتوره بون حزب لکوبونوکانی خوانده دا گيرکر و عربو استعماريان لبیر کرد درس اوابو در جمنایتی هجار دقال حزب مند استاندار هولير عبد الوهاب اتروشي شكايت اله احسان شيرزاد كرد كمحمد مولودن معلق كرد پر شركان لمجله راندبو بتر لسد شكايتهم للي مستفا علي كرابو حاصل به فرمان برزني محمد مولود رزگاري هات بلا من قبولي نخر دو كسر مجله هولير كا جار بر لوهر او چقيا مقاله كم هربو مجله هولير نوسي بو مناياكا لبرد دوکانی که بغدا راده بردم، چاقلای که مومیهی کراو لبنی نسرابو نرخی بستو دیناره ببیرم دهات، کبیو نبی او چاقلا بزیندوی شاعری کرد بوا، کپنجا چاقلا زندو قران یک ناینو بمردوی نرخی اوانده با علاده چه زور لشاعر و هنرمندانی کردم، بنمونه او چاقلا باز کرد بوا هاوینان کوری زانیری و چانی بوا، بمالو من دالوا حات ماقیستانو للای زین و, للا و حاجی امیران دجاین رجک سید عبید لای ایوبیم لپیدابو پاس در رجک لام میوه لری ترکیا و حات بول لسر دوای آوداگلی چوم لای برزنی. به با برزنی گود دمیو بتم ول فرانسه بخوانم. برزنی فرمی هزار توبه مکتب سیاسی بسپیره که هرچی دیوی بایپ کن. پیکا و حات وتم سید عبید نانی نخورد و پیش وتی فرمو نان بخو. عبید کردی هر. داود، بودم کوچن، ممکوچن. چیم کرد وا؟ نو آینه خوشی های، خم دگالی چون تنانی خورد و کس نیکوشت. کاغذی لعنت بر زنی او، با دکتر کامران علی بدرخان نصرآوچو، ایتر نم دیتو، نم چی کرد بو؟ احمدی برای میرزا لوساو و جماعت چوبون دیوی ایران، جایی که پیدا کرد بو، رانندگی دکرت. اغلب من دانسته ای خوارد از پر رای گرت یعنی بردین زندانی بغداو لپشان داگل جاسوسانی گیره یخوین گوریانه او دایناو با ایرانو کرا براننده شروانیم ها استاش هر لاکره جو رانندهی دکاو هاتو چوم هر دکا کک امیری قاضی زور جا سریده دامو پیکاوه دجای براستی زور مکیف گرتبویو هیچ عیبم تیدا ندی لکور مجلیک من دامزران که سال جار یا دو جار دربچه لجمار یکم دا فریان لجماره دو ده مقاله کمنوسی در باری عربی که رگز یان فارسی یان کردی یان زمانی تر بون. چلو که چلوچن روپره که گرد. بو بهره ما مستعانی کوری عربی که ام کفره بوکره وا. احسان شیرزادی رئیسمان زور ترسابو. گلیلیه کردم کچاری او کاره چونکن. گوتم حاضرم بو محاکمو جواب دانه وا. مجلسه که زلیان تشکیل ده پی رزانه عربی زور رئیسخان وتیم بیانوله دوچو نو همو شعر بیانې کله قران ده هاتون د لې نه فارسی کوردی او ور جراون نازانی امام شافعی فرمويا هر چیلہ قران ده هاتوه همو عربي رسانو زمني بیگانیت نه هاتوه من شوتم جناب شافعی بوخوی او فرماشتي کردو لغهتی بیگانه هیڅ خبري نبوه همو تفسیر کنده من وشي مشکوہ عجمیا او جر کوم نزیک حوصت کلیمن پیدا کردو کنیه روانیو متسکتی و شی فارسی به عربی کرا نو سین کشی مردین ادای شعر کلا سال 1909 چاپ کرا و دوهم المعریب الجوالخی کلا چرخی چوارمی کوچی نو سراو چنجر چاپ کرا و سیم المنجد کاسر لبریم پشکنیو یو هرچی نو سیومه لم سیکتی بد نتاندی تول سر حساب کن اگر چی بخوام پترل هزار و چهارصد و شاعر بیم ایتالیو حبشو ابریو آرامیو فر اونیو روسی و ریگراآون بلامن اوانی خو ننوشی کیشیان لبیر چووا امجردیان بود چند باور بکن کته حوصله تب و المنجد بخویانی وا ایدی با سلامت لکشکیان رزگرم بو دسر شافعیش شته دیشم لبیره لخیوتی شیخ ابی عبدالله چن ملایک میوان بون باسی خطبه جمعه او تلقین مردو کرا ک شافعی دله د عربی بن، وتم لپیش خطبه جمعه دا حدیث د خوینریته و دوه خطبه له جګی دور کاتی جماعت اگر و تربیت شو سر منبر کس خ سناکا جبرن کسی حساب کا پروپوچا ک پروپوج بل نه جمعه بر نه یعنی نصحت دکن کابراهیکرد یان ترک نازنینیه، جو بگری و نگری هر هیچا کوایب قط نوجی جمعی آوان عربی نازنن بر نکوتوا. بو مرد نیه، بو آوزندوانه که هاتون مرد نیجن. دلیان نرم و مردیان لبیره. نصحتیان دکری که اگر پیاوی چگ نبن پاش روزیان خراب دهی، کوای بوده بزمان خویان نصحتیان بکری. ملاکملا راز بو و و تی توجوان بیعدابید دقل امام شافعی دکی. زوریان خویان لیتو را کرد که قصی هجار حسابیو یما بیر من لیه نکردو توا. لکور ناملکی کم در باری عشیدتی گوانی کرد که لزمان عباسی در نو بونو شاری حلیان درست کردوا لعربیه و کرد کوردی و کرد. هفته دو جار یا سی جار کودبوینو. استلاحات عربی من با کردی ادیتوا. هرکسش دبوای صال یا نه حسابی برهمی بکره بزانین لسالک اگداد چی کردوا ک خزمت با ک دکتور پاکیزه رفیق حلمی بوینوسرا یان خود و یان در دکین او رويشت عبد الله نقشبندیش کمدیري کله حسابات بو نه دو خار بکا کشایو جمال بابان شکر مصطفی او محمدی ملا کریم بونه هاو کارمن مہمینیش لاکور بش در بو تحفه مظفریه درای کبی خاته سرختی قرار در لا ماوی سال ده فرهنګی کوردی به کوردی زور توو درخین دکتور او رحمان ملا معرف ک شش سال لا لننګراد مدرسې فرهنګ ساز کردن فیر بو بو بسری رابګه کمل عبدالله حیاکی پی اس پیرا فرهنګ مردوخ بکاته فش لو ماو یکه بغدادوم دکتور قاسم لو عبدالله حیاکی او حسن رستگارو مل رسول پیش نمازیو مامه منم زور ددی او هاتو چو منزور بو زور جر قاسم لو د بولیدن ک زور دستاوی خوش بو قاسم لوما وهیکما مستایدان جابه پاش سفر اروپایی جاری کیتر که ها تاوه له وزارت تخطیط ترح ریزی د مزرابو منگی سیاست دیناری ور دګرتو دکرد مخارج حوالانی حزبی خوې ویکوتين 26 فرہنجی کوردی ب زمانه غیر کورد من پیدا کرد کوتین فیش سازدان وتیان ملا خلیل سلیمان له شیخانی پشت موصل فرهنگی کیه بدینی نو سیو له سر به عربی کتیبه هيا خبر مان بوناردوه، قبولي نكردوه هاوكاري مان من او كارم وستوه قرد، در رقیح اولي روات شوما موصل شو بو راننده حاضر نبون بمبنه شيخان کشوانه رود دکران و تمبره من کس رود ناکه، دلمدانهو دقل دو پولیز بردین ما شيخان بو ما ميواني فرماندار کناو حاج رسولو خلقی سلیمانی بو نردم له دوی ملا خلیل دم یک بودم ناسی شاعری کی زور پیرو زور فقیر شو زور خوشمن رب وردو سبی ملا خلیل برد میو و مالخوی لری باسم کرد ک فرہنگ کد زراکس دکین ل فرہنجی گوردا سپاسدکین کلاتو بہرمن ور گرتو کتاب عربیہ کی سلی یزدیانی شت بناوی تو چاب کین هیڅ نہ بیا نفوتیو تو ک چنجر مال سو تنراو فوتاون اوانت بودمین با شوا بم دای بم پولی که شد دادمه. گوتی تو دتوانی سی دینارم بده ای؟ گوتی تو دتوانی سی دینارم بده ای؟ گوتم آی ما مستحبه چاره پولی دولت ندریه با تو بکی بدریه دوساد دینارد نقد دادمه کتیبکانی شد هر ملک خود بی گوتی هجار کوابی دتوانم خانو یک دروز کم با فرماندار موید قولیده که هم عرضی بداته هم کرسته خانو کتابکم هیناوه کور قرر دره یاد بودی کی حاجی قادر لکوې بگیری کریم راسپرده کور چوبو تاریکم خویندوه مژدمدنیه کا کور قرر لیدا و, و کوتل کو کی نیولش بو حاجی لکوې دا مزرنه وراینس پال دوته ایتالیا بم زوانه دغاتې بو روزی دا مزرندنی کوتل حاجی من له دستانبم ممه یمن له لن کور وتشوبو شعر کی هرباش خویند بو مانګی 100 دینر بزن شستگی 25 دینر حقي اندامانی کارا لکړه دا في كل جلسة التي كانت فيها 30 دينار حقي كوب نويد و سعادة سراري اوانش ترجمك تيب درسي كل دي كيك يك بوم لسيكسي پشكني هربالا فورميك تيب 60 دينار ادرا دهاتم یک جار زور بو لسالك دا لیکم دايا و پتر لحوصد دينارم هر لا مالیاتی درامد دا زور دولمن بوبوم زياريجنان و پولي نغدم زور بو هموشه ترزن مخارিজ کوم در آمدزور بو پر تسلی د جیامو بهمو توانا یرمتی دوستاني د سکورتي خوم د ام احترام زورو د هاته زیادیه او بش در بونم لهمو کاروبری ادبی او ترجمه ده بو بو حسودیو حسودي او ايري زور کس عراقې کبنا زانابونو د ګلمنيان درنبرد چون کردې کې ايراني له کردې عراقې ببر وتربه زور کس له خورات جاتيان د روژ یک دکتور کاوس خفتان دعوت کږ مسعود محمد او کمال منی کردبو گوتې هزار د زانه من لکوردینوسین دا چند زبر به درستم گوتم کاکا تنه چوی روسیا باجوی لو ته ته و اصلن کوردینا زانی شاتم او دا استانانه کنوسیتن کله دعوته که در چوین کاگ مسعود محمد فرموی هزار تو مجاملو جاملو تعارف نازانی ندبو اما با کاوس خفتان بلې وتم چک مسعود من روبینیو مجامله لبنی فاقد زانم امش نظری خوما رنگ پاش 50 سال معلوم به که مزاملش هر نفاقو و درویه روجیک لکومل دراسات کوردی بون جمله بو که س کشاعرکه لجولی کیتر به مدیر دولت ما مستع عبد شالی سگباب و من ل پیدا بون دلین دبه کوردی لشان و رنزبری نخویندار فیربین چند سال امت چی چیمان کردو چون زمان عدبیه کمان ترکی نو شوین ورزیر و گوانان کهوین که او جوینهی من بو همیشه من شر اوانم دکرد که زمان پاکی کردی تکدنو دانه بدانه دان عربی ورد جیرنو اویش به اشتیای نزانی خوین گلتن پیدا کردن لبر اواز زورین زور رقین لمن دبو اواز نبازینم لبرانبر او نزانه خوبزانه نسانه سر انجام کاری کی وی کرده بو که زورین بیر خویانو. قسای من بکنو اگر چی خراب اندوتم به نسر قسکانم پمایا لو شرو هرانه دا توانیم تا اندازې کی باش گشه به کو نوسینی کردی بدم گگرانی عزیز و خوشویز لیره داو بمشیویا دینکوطایی بشی و ششی خویند نوی کتبی چشتی مجیوری هجاری مکر یعنی. تاشوی کیتر و لبشی کیتر دا پیتندگی نوی شو آرام و شاد و بخت ور بن.